فصل 11. مردی به نام ایلازر از اهالی بیت یعنی دهکده مریم و خواهرش مرتا مریض بود مریم همان بود که به پاهای خداوند عطر آنها را با گیسوان خود خوش کرد و اکنون برادرش ایلازر بیمار بود پس خواهرانش برای عیسی پیغام فرستادند که ای خداوند، آن کسی که تو او را دوست داری، بیمار است، وقتی عیسی این را شنید گفت، این بیماری به مرگ او منجر نخواهد شد، بلکه وسیلهی برای جلال خداست، تا پسر خدا نیز از این راه جلال یابد. عیسی مرتا و خواهر او و ایلازر را دوست می داش. پس وقتی از بیماری با باخبر شد، دو روز دیگر در جایی که بود توقف کرد. و سپس به شاگردان گفت بیایید باز با هم به یهودیه برویم. شاگردان به او گفتند: ای استاد هنوز از آن وقتی یهودیان میخواستند تو را سنگسار کنند چیزی نگذشته است. آیا باز هم میخوایی با به آنجا بروی عیسی پاسخ داد؟ آیا یک روز دوازده ساعت نیست؟ کسی که در روز راه می لغزش نمیخورد؟ زیرا نور این جهان را می‌بیند اما کسی که در شب راه برود میلغزد، زیرا در او هیچ نوری وجود ندارد عیسی این را گفت مقصود دوست ما یلاذر خوابیده است اما من میروم تا او را بیدار کنم شاگردان گفتند ای خداوند اگر او خواب باشد حتما خوب خواهد شد عیسی از مرگ او سخن میگفت. اما آنها تصور کردند مقصود او خواب معمولی است آنگاه عیسی به طور واضح با آنها گفت ایلازر مرده است. به خاطر شما خوشحالم که آنجا نبودم چون حالا می ایمان بیاورید. بیایید پیش او برویم. توما ما که او را دو غلوم به سایر شایردان گفت بیایید ما هم برویم تا با او بمیریم. وقتی ایسا آنجا رسید معلوم شد که چهار روز از او را دفن کردند. بید انیا کمتر از نیم فرسنگ از اورشلیم فاصله داشت و بسیاری از یهودیان نزد مرتا و مریم آمده بودند تا به خاطر مرگ برادرشان آنها را تسلیدهند. مرتا به محض که شنید ایسا در راه است برای استقبال او بیرون رفت ولی مریم در خانمان. مرتا به ایسا گفت خداوندا اگر تو اینجا می بودی برادرم نمی مورد. با وجود این می‌دانم دانم که الان هم هرچی از خدا بخواهی به تو عطا خواهد کرد. ایسا گفت برادرت باز زنده خواهد شد. مرتا گفت می که او در روز قیامت زنده خواهد شد. ایسا گفت من قیامت و حیات هستم. کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد حیات خواهد داشت. و کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد. آیا این را باور می کنی؟ مرتا گفت آری خداوندا من ایمان دارم که تو مسیح و پسر خدا هستی که می باید به این جهان بیاید. پس از اینکه این را گفت رفت و خواهر خود مریم را صدا کرد و به طور پنهانی به او گفت استاد آمده است و تو را می خواهد. وقتی مریم این را شنید فورا بلند شد و به طرف ایسا رفت. عیسی هنوز به دهکده نرسیده بود بلکه در همان جایی بود که مرتا به دیدن او رفت یهودیانی که برای تسلی دادن به مریم در خانه بودند وقتی دیدند که او با عجله برخواسته و از خانه بیرون میرود به دنبال او رفتند و با خود میگفتند که او میخواهد به سر قبر برود تا در آنجا گریه کند همین که مریم به جایی که عیسی بود آمد و او را دید به پاهای او افتاد و گفت خداوندا اگر در اینجا نیبودی برادرم نمیمرد عیسی وقتی او و یهودیانی را که همراه او بودند گریان دید از دل آهی کشید و سخت متأثر شد و پرسید او را کجا گذاشته اید جواب دادند خداوندا بیا و ببین اشک از چشمان عیسی سرازیر شد یهودیان گفتند ببینید چقدر او را دوست داشت اما بعضی گفتند آیا این مرد که چشمان کور را باز کرد، نمی توانست کاری کند که جلوی مرگ ایلازر را بگیرد؟ پس عیسی در حالی که از دل آه می کشید به سر قبر آمد. قبر قاری بود که سنگی جلویان گذاشته بودند. عیسی گفت سنگ را بردارید. مرتا خوهر ایلازر گفت خداوندا. الان چهار روز از مرگ او می گذرد و متفن شده است، عیسی به او گفت آیا به تو نگفتم که اگر ایمان داشته باشید جلال خدا را خواهی دید؟ پس سنگ را از جلوی قبر برداشتن. آنگاه عیسی به آسمان نگاه کرد و گفت ای پلر تو را شک می کنم که سخن مرا شنیده ای. من میدانستم که تو همیشه سخن مرا می ولی به خاطر کسانی که اینجا استادن را گفتم تا آنها ایمان بیاورند که تو مرا پس از این سخنان عیسی با صدای بلند فریاد زد، ای ایرازر بیرون بیا. آن مرده در حالی که دستها و پاهایش با کفن بسته شده و صورتش با دستمالی پوشیده بود، بیرون آمد. ایسا بانها با گفت، او را باز کنید و بگذارید برود. بسیاری از یهودیانی که برای دیدن مریم آمده بودند، وقتی را عیسی انجام داد مشاهده کردن به او ایمان آوردند. اما بعضی از آنها پیش فریسیان رفتند و کارهایی را که عیسی انجام داده بود با آنها گزارش دادند. فریسیان و سران کاهنان با شورای بزرگ یهود جلسه ای تشکیل دادند و گفتند چه باید کرد؟ این مرد معجزات زیادی میکند. اگر او را همینطور آزاد بگذاریم همه مردم به او ایمان خواهند آورد و آن وقت رومیان خواهند آمد و جا و ملت ما را خواهند گرفت. یکی از آنها یعنی قیافا که در آن سال کاهن اعظم بود گفت شما اصلاً چیزی نمی دانید. متوجه نیستید که لازم است یک نفر به خاطر قوم بمیرد تا ملت ما به کلی نابود نشود. او این سخن را از خود نگفت بلکه چون در آن سال کاهن اعظم بود پیشگویی کرد که عیسی می باید در راه قوم یهود بمیرد. و نه تنها در راه آن قوم، بلکه تا فرزندان خدا را که پراکنده هستند به صورت یک بدن واحد به هم بپیوندد. از آن روز به بعد آنها توطه قتل او را چیدند بعد از آن ایسا دیگر به طور علنی در بین یهودیان رفت آمد نمیکرد بلکه از آنجا به ناحیه نزدیک بیابان به شهری به نام افراین رفت و با شاگردان خود در آنجا ماند. عید فسح یهودیان نزدیک بود و عده زیادی از آبادیهای اطراف به اورشلیم آمدند تا قبل از عید خود را تطهیر نمایند. آنها در جستجوی عیسی بودند و در معبد به یکدیگر میگفتند، او به جشن نخواهد آمد نظر شما چیست اما سران کاهنان و فریسیان دستور داده بودند که هر کس که بداند عیسی کجاست اطلاع دهد تا او را دستگیر نمایند